اجاره نشین ها کارگردان داریوش مهرجویی بازیگران عزت الله انتظامی اکبر عبدی حسین سرشار حمیده خیرابادی رضا رویگری ایرج راد سیاوش تحمورز، فریما فرجامی، منوچهر حامدی، فردوس کاویانی، منیجه سلیمی گوینده گلاره عبوسی تدوین و میکس اشکان آزرماسوله صدا بردار بابک جاوید شاش روی خیابونای تهران رو نشون میده ماشینا، ساختمونا، محله های مختلف زمینی وسیعی که در اومد فقط ساختمون بلندی قرار داره و فردی داره پلاک شماره نوزده رو با میخ به بالای در ساختمون میکوبه مادر با چای و شیرینی دم در میاد و از مرد پذیرایی میکنه مرد همچنان میخ رو میکوبه به هم میکنم گسته شما a kidir be chun ya in vaqaye naqes ba hamsaya olup kine ke shafarobat to washin basur at dab dar ajas maskan vaist va chalaqa ba halat hukumi va dab ba dar ناژاس مشخصه که مداره و بولهای رو که خلافه مخویانه جن می‌کنن و به محص بورد اونا بانمون می‌کنن هیچ اتفاقی نگفتاده یا حضرت عباس با حدیث توسلی توسلی و حاجتش مشهور چیک و وسایل مهمشون هستن خونه به تاکید داره خراب میشه مشخصه که قندی هم اینجا کار میکنه ساعت دو رو نشونده گوشی تلفن رو بر میداره صدای بوغ نمیداره بر میگرده پیریز رو چک کنه دو شاخه تلفن رو به پیریز برق میزنه So more than I was a long اندی سر تا دوده گرفته با ماهی وزکرد و سخته از مغازه منفجر شده بیرون یاد. نه نه نه احالی ساختمون نه نه نه تو آشپس خونه ی خونه اباساقا در حال نه نه نه کار کردن و تداروک برای کارگران هستن. بونه برم، الاهی ظرف چی داری؟ من ظرفتان کمه نه من ظرف دارم مادر جون این پس جواب جبا تود از شیشتایی براتون گوشقاب، بیش دست، کار چنگار، قاشق همه چی میدم بیارم بونه دارم. برم مادر جون جو. این که کمه من میبه دارم آه نارنگی دارم سیف دارم پس همون دارم بونه بونه برم پس بیاد. مادر. بیار مادر. من هم قربوزه دارم یا چند تا هم هندونه می شام کی بهشون بدیم شام اگر می‌خواید هم قیمه سبزی دارم هم از ظهری گالامشون ما کوفته داریم ادیشر فسونجون مونده هم بسته بدیم غذای مونده بد نیست میگاسم بهشون بر بود. من میگم بهترین این کار اینه که پیتزا همبرگر بگیریم خیال خودمونم راحت ما در بعد از اون همه قیل قال آبر و قال و ریزی، حالا بیام بهشون پیتزا همبرگر بدیم پیتزا همبرگر خودمون چتیر نمی‌شه یلوف فسقلی اچھا ی با پات سومش اخیری به شوگو سیچل نه فلان چرک چد و راسته خستم اش میگه رگ ریشاش بگیره, بگیره قشنگ صافش کنه شیشک باشه بشه سوسموسه بد نداوا جلدی برو جلدی بیا مادر بهش بگو اکبر بلش کنه سویچ شده من خودم میرم پیر ببینی الهی سویچه بده انچما من نمیبینم دارم چی پیش بده مادر داشون درد نمیگیره چی بده بلی پوشته بندری بله تو برادر خوب نیست با هم دیگه توی یه خونه قهر باشین بده مادرش باید اباس آقا سویش ماشین رو به آقا مهندس میده مادر ایستاده در این رد و بدل کردن سویچ ماشین دستای همون میگیرن به حالت آشتی و اباس دست گرم به شانه برادر کچیکش میزنه مادر اشک میریزه اله خیلی ببینیم احالی ساختمون از طبقه خودشون شیرینی و هندونو خربازه میارن بفرد! بفرد! خواهر باقید! خواهر باقید! دوشتیگرموزی! دست اون درد کن! بارون دست اون! مادر تو آشپسخونه برنج بار گذشته. بفرد! آیوانه! آیوانه! بفرمیشید! خوش آمون! ما این از امکارو کسی ها خوب میتونو بخونه! بخون! کجا لب نکش! بخون! بخون! بخون! بخون! همه باشادی دور هم جمع شدن و جشنی بر کردن. کیا وای ما بی‌قراریم از دوریه دای قندی رسید فاکتورها رو از کارگرا میگیره اونها آواص میخونن و قندی میرخسه چوش پسوره همه اهالی ساختمون قضا درست میکنن آب و صاقو گوشتارو به صورت کباب سیخ میکشه خانما سفره رنگینی میچینن همه دور سفره تزیین شد و کامل نشستند بفرمایید بفرمایید با بفرمایید بفرمایید به خدا می‌بخشم خیلی مزایم شده سر سفرهتون سب باشی آقا بفرمایید قربون دستم قورغام آقا عصمت رو تو اشهر بده بیا برای اینا شما بیا اینا اینا اون واسه شما بخور دیگه ماش میتی یه قاشق من جواب بده یک قاشق من چه رابطه اونجا این قاشق من بده این سینما دستا بیرونش می‌گذشتت آقای کمال بابا کجا ایشراما صدای سایله کمیشتیم که تو را پیدا. حالا همین طور بنش کردی اون بالا اومدیم پایین. بنده پاشو اون شو گاز یارت میکنه. ببر. جانم. چرا باید الهی الهی اسد پیش مرجیت بشه. الهی من بنیرم و صدا داده تو رو نشنوم. بیا بالا. بیا بالا قربونات برام الهی بابام. ننم. قندی اون رو کول میکنه و هم سر سفره میشینه. Mulle on see rõõm, et ma olen siin. کار, کار مثبتی و اگر این امکان وجود داشته باشه که با در نظر گرفتن مواردی مثل بحث رفت و آمد انتخاب نبید. یک مکان مناسب امکان رفت آمد دوستان فراهم بشه خب قطعاً میتونه در بحث یه مقدار نزدیکی کردن نوابین به سینما و اون پیوندی که انتظارش میده سالها اثر بخش میشه متاها نقلی که حالا اشکان اشاره کرد اما با یک پذیرش به این شکل بسکایی میکنم که نمیشه از کنارش عبور کرد برای اینکه این تجربه حتی تجربه توضیح دار کردن فیلم چیزه تازهی نیست حرکتی که شما آغاز کردید در نیده فیلم هست... شامان اربای دیگر رو هم در بر می گیرد و از سوال بعد این که به غیر از مؤسسی که خانمه احسی تحسیز کردن و فرقویت می کنن و این پرنامه مؤسسه از سمت انجامن نابی, نابی یا اخی و بچه‌هایی که مثلا میتونن بخونن و دوستای بازیگری نمایشنامخوانی کنن یا دو دوستان موزیسیانی که ما مالا تو این جمع داریم میتونیم به شکلی که با های دیگری که مثلا از دوستان ما هستند خواننده داریم اینا به همه به صورت ترکیبی بین همکاران ما که نابینا نیستن و دوستان کمپینا و نابینا یک برنامه خیلی هنری بذاریم حتما من رفت و آمد و یک برنامه خیلی خوب براش میچینم که دوستان اذیت نشن ولی آسان تره از دوری ما به زادشکی کنار ما نباشه ما که چیزی از آدمان ها نمیخواه که به هم دیگه رسیدیم دیگه هیچی از این دنیا نمیخوای کسی با هم نمیخواد ما رو اما حالا ما با همین تنهای تنها چقدر دلگیر شادی توی قربت ولی آسون از دوری ما کسی با هم نمیخواد ما رو اما با همین تنهای تنها چقدر دلگیر شادی توی قربت ولی آسون از دوری ما